و آنان که بدان چه به سوی تو فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل شده است ایمان می آبرند و به آخرت یقین دارند